پنجره های روب مهتا دیت تو محتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم، همه تنچهشم شدم، خیلی به دنبال تو گشتم. آسمان صاف و آرام بخت خندان و زمان رام. خوشی ماه فرو ریخته در آب، شاخه ها دست برآورده به محتاب، شب و صحرا و گل و سنگ، همه دل داده به آوای شبا رفت نزه بد که این نام داغم زان پر است کسی کو هواوی فریدون کند سر از بند زهحاک بیرون کند بپویید که این محتر احری من است جهان آفرین را به دل دشمن است. ام خداوند بخشندی متعال. سلام از می کنم خدمت شما ایرانیان عزیز شما که رادیو فرهنگ رو می این برنامه پنجره های رو به محتاط هست. من همیت رضاهدايتی راد خستم و میهمان عزیز یکشنبه شب خای ما 24 روم ماه. گفتم فدا می نامیم. باز داداشون میخوایم. باز میخوایم. دکتر فریدنی جنیدی هستن؟ اه... درام آقای دکتر حالا شما خوبه درود بر شما شاد باشید بله خوب. آقای دکتر جانهیدی شما میدونید هر یک چند میشب میان به من میگن این عمره ازم کم میکنم دیگه ترسیدم ت... نه ترسیدم بحش. یاد بگرفتم آموختم که ببینم حالا پرسش دیگه از کنم خب ماه کی تولو کرد ماه چهارده هم... نه نه نه همین 24 هم کی تولو کرد نمی‌دونم. آقا بیخوای نمره کم کنید کم <تصفيق> نه من مقسم اینی <تصفيق> <بزنید تصفيق> که چون جوانان ایران رو به ماه زیباترین منظری که خداوند در آسمان و شبان البته ستارای باران هم خیلی زیباست ولی در شهرهای بزرگ ببینیش تهران متاسفانه زیر نمیشه اما این دهیش ایزدی رو ببینیم با او زندگی کنیم خوب حالا بگم که تلو کرد بیشتر از تفیلی دم کرد و من به اون درود فرستادم چون در ایران و باستان به ماه درود میفرستادم و هفته پیش از رس موند. این مونده به آینه نگاه میکنم با آب نگاه میکنم وقتی که ماه شب اول رو میرن پیشتر از سفیددم هم کرد این, این روزها از ماه بیشب تتمانک خونده میشه در زبان باستان یعنی ماهی که از شب دور هست اینا در روز دیده میشه. شه دیده میشه. نباه کنید باسممون برکه ماه رو که کم کم کم کم به صورت هلال در میاد ببینید و از اون بر ببرید. این صحبت که ما با شما داریم دقت بنده رو از زیاد کنه همطور دقت عزیزان شنونده رو و ما ممنونیم حالا نمره اگر بدید ما هر نمره که شما بدید. اصلا شما نمره گرفتن برای من امتیازه حالا هر نشه فییررو باشه. بازگزارم از شما. از میکردم برای شما امشب ما میهمان از این ماتر فریدون جنیدی هستن در شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم شما تلفن های برنامه ما دویست و بیست، چهار هشتاد و پنج، دویست و بیست، و شماره پیامک ما سی هزار پانسد و, و هشت هست سی هزار و و هشت و ما امشب بحث خیلی خوبی رو انشاءالله شروع خواهم که مثل هفته گذشته به آقای دکتر فریدون راستی من این رو میخواستم میگم نمایش های کتاب آغاز شده آقای دکتر شما خودتون در نمایشگاه حضور دارید بفرمید به صورت چه حال و هوایی داره از اونجا برام بفرم. من روز دوشنبه و سه‌شنبه یعنی فردا و پس فردا از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 در قورفه نشو بل خواستم که به پرسش ها پاسخ بدم و خدمت همه عنوان برسم. به ویژه بسیاری از کسانی که این برنامه رو گوش می‌کردن توجه کردن و به قورفه رفتند و پرسیدن که من کی خواهم بود. با امیدی ازان فردا و پس فردا چهار تا هشت بعد ظهر در الان نبودید. تا الان, نبودی. تا الان نبودی. سر زدم ولی اون ترکی با اشرمند گفتم گفت و گوتوشه فرد فرد فردا پس فردا بگم. فردا سه شنبه، دو سه شنبه از ساعت چهار تا هشت بعد از ظهر تا چهار تا هشت بعد از ظهر در نشر بخ بلخ. بلخ. بلخ. موسیقی میشنویم، صحبت رو شروع خواهیم کرد. دکتر فریدون جنیدی که صحبت میکردیم در اتاق کناری در اتاق فرمان ایشون از قیام ایرانیان علیه حکومتهای ظلم در بخشهای مختلف شاهنامه یاد کردند. من پرسیدم آی دکتر الان امشب در مورد کدام قیام میخوایید صحبت کنید گفتم قیام بزرگی کابه یا هنگر بیتابانه مشتاقانه میشنبیم بفرمنای دکتر چون بیداد بابلیان که بیورست و به قولی زخاک نامیده شدن هزار سال به درازه کشید نرمک نرمک ایرانیان با دریافت یک فرمان فرهنگی از پیام روان نیاکانشون بیدار شدن و آماده شدن برای اینکه برابر این ستم و ظلم بایستند و نماد این خیزش کابه آنگره اینکه که آهنگر چه رمزی رو در داستان ایران بیان میکنه من فعلا نمی‌تونم زیاد بهش بپردازم چون این از مصادیریه که در داستان ایران مفصلا بهش پرداختم اما مختصرا اینی که بروز دوران فلز پس از چند ده هزار سال سنگ کم کم تجربه فلز پیدا میشه و نخوسی کشوری که فلز رو به جهانیان عرضه کرده ایرانیان هستند و میخستیم فلزی که به دست اومد مس بوده. ما بایدیم که آهن نام عمومی فلز بوده در این دورم های مختلف در ابستا بوده سعنه در پلشید آسن در فارسی آهن که البته در داموان میگن آهن یعنی سه به قابل تب، تبدیل است مثل که در دستور زبان فارسی خونده باشید. خروس به و یا راس به راه ه به سه قابل به سین قابل تبدیل بنابراین آسن پهلوی در زبان دامبان شد آهن و در مناطقه شد آهن منتها آهن زمنان نام عمومی همه فلزات هم است. ایرانیان به مس دست پیدا کردند و یک حرکت فرهنگی جدید و یک کوشش تازه و یک افق جدید برای ایرانیان پیدا شد و این افق جدید که اونا رو برتره می داد به همسایگان ظالمشون که ایران رو برای قد کرده بودن به خیزش و به برای اعتراض انجام می داد. می بینیم که کاوه در درگاه زها میشه و اعتراض میکنه چند شب قبل نیستی من خوندم. با این حال باز دو مرتبه من اونا رو خودش رو شوال می کنم که به یاد بیارید و شنوندگان و جوانان عزیز ایران هم بیاد بیارید سپاسگزار همون گاهی که یک یکی یک کنی یک یعنی ناگهان این یک یکی یعنی ناگهان در یک خوردن هنوز مفهومش باهم بوده و در یک ناغافل همون گاهی که یک ز در درگاه شاه برامد قورشیدن دادخواه تکان بیده رو پیش او خواندند بر نام دورانش به به دو گفت مهتر به روی جن که برگوی تا از که دیدی خروشیدو خروشی تو زد دست بر سر که شاه که شاها منم کاوه دادخواه یکی بیزیان مرد آهنگرم شاه آتش آید همی بر سرم تو شاهی و گر اجده ها و پیکری به باید بدین داستان داوری که گر هفت کشور به شاهی تو راست چرا رنج و سختی همه بحر ماست شما با ما من به باید گرفت بدان تا جهان ماندن در شگفت مگر کس شما رو تا آویت پدید که نوبت بگیتی و من چون رسید که مورانت را مغز فرزند من همی داد باید زهر انجامن هفت کشور کش، های آباد زمان و باستان بوده که همه زیر فرمان آب در میان و منطقه چون این دو اجده ها یعنی دو آتش بجانی که در دو سوی ایران شهر بوده. خب بر مرز ایران شهر اون زمان بود بنابراین این جوانان رو که می که قربانی اجده بکنن بیشتر از همین پیرامون همین کوه ها می و از راه های دور نمیتونستن بیارن مثلا فرض فرمه که از یه راه خیلی خیلی دور که هزار فرسنگ فاصله داره با نماوند یا با البرز اگر خاطرتون تون اون مار دومی اجده های دومی yeah. البرز بود در فدراسون روسیه امروز قرار گرفته که سرزمین ها رو از ما گرفتند تو قاجاری هم هیچ اصلا هیچ به فکر نبودند در حال بخشی از ایران بوده امروز در شمال شرقی گردستان قرار داره خب معلومه که جوانان این حضورت رو بیشتر میبرن قربانه بکنند بنابراین این موضوع موجب بشه که ایرانیان برخیزند و نماد خیزشون ها کاوست کاوی آهنگر یعنی آغاز زمان مثل آغاز دوران فلز. بله. اینجا می‌بینیم که یک سخنی اومده که اینا جز همون تو همون رمزاسمون تا از بس اینجا ساده هست هیچ کس فکر نکرده که این رمز هست. بله. من این رو حالا میش گفتم برای جوانان بیدار دل ایران با اینکه این هنوز در کتاب من باید عرضه بشه ولی میش گفتم تا بدونید که یک حرف نیست در شاهنامه ما که اون از اون نتونید که تفسیر بکنید و گزارش بکنید و امق و معنا دریابید خب وقتی که کابه آنگر خروچید و گفت که چرا فرزنده من گفت فرزندان رو بهش بدین و بعد کسانی که در دربار بودن که معمولا مدیه سرهای پادش هستن که این از جور اشخاص در همه دوران ها بودند و کم نشد از حضورشون اینها به کابه میگن که تو پادشاه ها هفت کشور هستید تو فرمانت بر هفت کشور روان هست نهان شاه را خواندند آفرین که ای نام بر شهر یا زمین چرخ فلک بر سرت آده سرد نیارد گذاشتن به روز نبرد نیارد یعنی یارستن نیجارد یعنی کردند چرا پیش تو کابه خانگوی به سان همه سرخ روی همه محظر ما به پیمان تو به درد به پیچت فرمان تو یعنی در حقیقت وقتی که ستم گران زیاد میشه میخواین که یه چهره مهروان از خودشون نشون بدن و در حقیقت زحاک گفتو توی محضر درست کنید محضر یعنی نوشته اما فقط در شانومه همه جا از محضر نمون بوده میشه که در این محضر همه امزا بکنن بنویسند که زحاک پادشاهی عادل هست پادشاه دادگره و ستم نمیکنه چرا گفته میشه ز... محضر؟ چرا در شاهنامه فقط از محضر نام برده شده؟ بگمانه من این یک سنگ کنده است در کوهستان ها و ببیشی همین کوستانی که بین بابل و ایران هست که امروز زاگرس خونده میشه به نام یونانی که من اونو خواهم شکافت در اینجا یک محضر درست میکنند که در... زحاک نشون بده که این داره مهر میبرزه و مردم مطیبو هستن و داد میبرزه و کاوه این محضر رو پاره میکنه یعنی ایرانیان میانو با هرچی بسیده که داشتن اون ای که روی کوها بود و اینا رو از بین میبرن و به گوش زحاک میرسه اینا که بزرگان که میگن که چرا محضر ما به پیمان تو به رد به پیچرد فرمان تو شه نامور پاسخا آورد زود که از من شگفتی بباید شنود. شگفتی همون رمز عظیمی که من یاری از آن گفتم که چون کاوا آمده در گه پدید دو گوش من آوازو را شنید میان من و او در ایوان درست یکی آهنین کوه گفتی برست. این کوه آهنین چیه؟ این کوی که ما متاسفانه در همه نوشته هامون حتی به شاگرده درست میدیم می زاگروس نام یونانیشون میگیم این کو در عوستاد و زامیادیش ازش با نام اوپایری سعنه نام برده شده اوپایری پیشبندی که فرازارو نشون میده این اوپایری در زبان پهلوی شد اپور و اپر بعد در زبان پرسید ابر بات جستن فورسی خورشیشو شد، شد بر، بر یعنی بالا. او پای ری سعنه. یعنی کوهی که بر فراز اون فلز و آهن است. و شما می‌دونید که این کوه نخستین جایگاه فلزگری در جهان بوده و نیوکون ارجمند ما از این کوه رو گرفتن و به جهان صادر کردن. البته باسن شناسون تا چندی پیش میگفتن که 500 سال پیش در جهان فلز و فلزگری پیدا شد. اما یک دانشجوی هوشیار ایرانی در یک محبته نزدیک که کاشان یک آثاری از فلسکری پیدا کرد از روبه نیست ما این گزارش داد منطقه از ناهمانگی دستگاه های فرهنگی ما آلمانی ها آمدن اینجا رو کردن بعد و این رو کردن به نام خودشون ما کردیم، ما پیدا کردیم، نه یک دانشجو ایرانی پیدا کردیم متاسفانه من نام اون دانشجو رو نمی دونم و به من گفته شده و خیلی بدنبال نام او هستم اگر آواز من رو از این رادیو می و الان درود بر اون دانشوی خوشیار که توانست که ایجا پیدا بکنه این نزدیکی کاشانه به نام عریسمان در پنج 25، 45 کوره زوبه مثل یک جا پیدا شده کی 6000 هزار سال پیش شما بسنجید که یک چنین مجموعی رو میشه برتر از کارخانه های زوبه فلس زوب زوبه, زوبه آهن بزرگ جهان امروز به شما رو برد هزار سال پیش که جهان فلز رو نمیشناخت در کشور ما فلس شناخته شد مثل و در یک محوطه چل پنج کوره یک جا ببینید خودتون این چه عظمتیه و کنار همین کوه اوپائری سعینه هست کوه اپایری سعینه در زبان شد اپورسین که در کتاب بندش از اون نام بوده شده و در فرسی بر در حقیقت قیاس همین تغییراتی که با میکنند می باید بشه من اینجا به ایرانیان به دستگاه فرهنگی به کسانی که کتاب های درسی می پیام میدم. این مانگروار خودتون هموار نکنم که یونانیانی که اومدن کشور رو به تراج بودن و همه کتاب های ما رو از بین بردن و همه خیلی هم ما رو بدار زدن و همه آثار و فرهنگ رو از بین بردن این کوه رو به نامی بنامیم که اونا بر این کوه بودن اونها دوست دارم اونا گفتن زاگروس, اونا زاگروس. که نه ولی زمان زاگرس خب ما این کوه رو به فارسی بعد بگیم ابرسن ببین حالا رمز بزرگ چیه؟ میگه که ایرانیان پشت این کوخ بیام کردم و محضر ما رو پاره کردم به این من و یک کوه آهند بود من نتونستم چیزی بگم. این رمز بزرگ این داستانه فرزندان ایران به گفتارهای نیاکانتون بیشتر بنگرید توجه کنید دقیق بشید مغز اینا رو بشکافید رمز اینا رو بشکافید هیچ سخن بی حکمت نیاکان بزرگواره نیکو شما نگفتند من نمونم درست فهمیدم یا نه کاوه یعنی همون کوه همون کوه تو حالتو رمزگوشایی فکر کردی یا نه یه معنی دیگه ای داره کاوه ایرانیان هم که به دوران مست رسیدم به دوران فلس رسیدم و اون سوی این سوی یعنی اپایری سنه هستم و بابل اون سوی کوه اپایری سنه هست سعینا. یعنی اینکه ایرانیان که آغاز کردن به خیزش و خیزششون هم انقلاب فرهنگی بود برای که یه چیز جدیدی رو به جهان هدیه کردن. البته این انقلاب فرهنگی نه از اون انقلاب فرهنگی بود که در چین اتفاق افتاد و همه آثار فرهنگی باعث این بل. بلکه این یعنی خیزش و دستیابی به رویدادهای تازه فرهنگی و این به ایرانیان نیرو داد و بابلیان دست به اونا پیدا نکردن. نتونستن نمیتونستند که جلوه این خیزیش رو بگیرن. این که می‌بینیم که زهاک گفته که میانه من او در ایوان درسته که آهنین کوه گفتی برست اونا اون سوی کوه هستن. ما این سوی کوه هستیم و اونا دیگه کم کم نیرو گرفتن و همینجاست که می‌بینیم که وقتی که کابه از درگاه زحاک میاد بیرون اون سبیتیست که در آغاز خوندم دوباره می‌خونم خروشان هم میرفت نیزه به دست که این نام داره نیزه به دست یعنی فرهنگ بست پیدا شده فرهنگ فلز پیدا شده چون تا به حال از نیزه در شانومه یاد نشده بود که اینام نام از یزدان پرست کسی که هواوی فریدون کند سر از بند زحاق بیرون کند به که مهتر حریمن است جهان آفرین را به دل دشمن است این آغاز پیدایش کیش مهره آغاز پیدایش دوباره پیدایش کیش ایرانیه که در اون سترش خداوند میشه در حالی که اونها کارشون همه احریمنی بوده یعنی با یک خیزش بلند شدن با یک در اینقدر رهاورد فرهنگی با یک پشتوانه فرهنگی ایرانیان بلند شدن بعد هم در این روز میبینیم که حتی کافه کشته نمیشه ببخشید حتی زحاک کشته نمیشه یعنی ایرانیان خون نریختن در این خیزششون خیزش با فرهنگ هم بوده به طوری که بعد در پایان داستان زحاک می‌بینیم که فریدون زهاک رو میاره میاره در کوه دمواند بند خب خود دمواند هم دیگه آتش بشان ها هاکه یعنی می‌بینیم پایان دوران ستم بابلیان با پایان در حقیقت خروش و خیزش دود و ستم و آتش دمواند همراه چون اینا با هم همراه میشه هم هنگی میشه بنابراین در داستان ما اینطور پیدا میشه که زحاک یعنی عجیده یعنی بی, بی همراه با کوه دمووند خاموشی پذیرفت. کی وقتی که ایرانیان بیدار شدن نسبت به فرهنگ دیرین خود وقتی که ایرانیان بیدار شدن نسبت به کیش و آین خود و بدون اینکه که خون بریزن حتی زحاک کشته نشد این خیلی مهمه این است که خیزش کابه به ایرانیان میده که اون خیزشی به نتیجه خواهد رسید به نتیجه خوب خواهد رسید که همراه با فرهنگ باشه اون که خیزشی که با خروش و خون و ستم و کشتار و سوختار همراه باشه اون نتیجه درست نمیده نتیجه به آین نمیده این پیام نیاکان خیردمند ماست به ایرانیان حالا البته ایرانیان بارها خیزش دیگه کردن که ما در گفتارهای پسین به اونا خواهیم رسید ولی این نخوستین همراه با فرهنگ، همراه با اوین، همراه با دین حس ستم و بیداد و کشتار و سختار و اون چیزی که حالا بیشتر تصویر ذهنی خودم رو دارم میگم آقای دکتر جنیدی تصویری که از دوران کودکی در ذهن من نقش بر... گرفته و در ذهن خیلی از ایرانیان نقش گرفته ما همیشه کابر رو یک انسانی، یک مرد خیلی بلند بالا، یک انسان بلند بالا، با یک درفش کاویانی در مداری این درفش کاویانی در همون پیامی هستش که کاوه داره، پیام کاوه داره یعنی نوشتار، یعنی فرهنگ درسته این تصور البته که اینجا در شانمات خروشان همین رفت نیجه به, به دست بعد در افضاین اومدن اومده همون چند که هم پیش پای ببندن هنگام زخم درای نگام زخم در ینی در یعنی زنگ بزرگ کارربوان شطور می بینید این افزندگان بهزار کرده همان کابه آن بر سر نزه کرد می این نا درست دوبار آن در یک گفتار نمیاد که من. اینا افزود های افسانه‌گون به شما اما در رش کاوییان یک مفهوم خیلی خیلی بلند داره که اون امید خود در آیم به هنگام خودش. ولی فعلا ما همین رو بدونیم که این خیزش خیزش فرنگیه که همراه با کشف فلز در جهان پیدا شد و جهانیان که پاسدار زحمات نیاکان ما فکر میکنن همه چیز از خودشونه. ولی باید بدونیم که در همه مراحل فن و دانش و بینش جهان بشری، وامدار نیوکان ما هست. حالا اونا به جای خود اونو نباشم. ما ایرانیان باید بدونیم که نیوکانمون فلز رو به جهان عرضه کردن اگر امروز با فلز همه کارهای صنندلی جهان در گردش هست این رو وامدار نیوکان ما هستن ما بدونیم ما درو بفرستیم به نیاکانمون ما یاد روان نیوکان بشناسیم رو بله بشناسیم این اتفاق میفته فتیم شناسایی ما فهمیدن ما این رند که شما میکنید رسیدن به اون فهمه. چقدر دادن ما رو تشنه می‌ذارید؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تشنه خوبه بعد وقتی بعد که به چشمه رسید اب کم‌جو با... تشنگی آور بده. بله. تا از به, چ... به, تش... به چشمه رسیدید، اون وقت می‌بینید که این تشنگی چقدر دلپذیر بوده با رسیدن به چشمه. خب ما بحث رو ادامه میدیم در فرصت بعدی. ما الان میتونیم به حالا تلفن‌های شما اومده، تلفن‌های شما رو می‌شتاین. من یه بار های برنامه خدمتتون ارزم می‌کنم شما بندگان عزیز. دیویست و بیست من یه پرامک رو باییم. من بازم چون این همش دهن من رو مشغول میکنه باز پرامک اومده استاد کیم میاین قرفه نشر بلغ آقای رستمه ایرانی از زنجان تماس میگه از زنجانشون بیان نمایشگاه کتاب آی دکتر فرمودن که دوشنبه فردا و سه شنبه از ساعت چهار تا هشت شب میان نشته بلخ و اونجا شما میتونید با ایشون دیدار داشته باشید سوالی اگر دارید بپرسید به دوستانم بگید در این زمان چون میدونم شما شهرستان دارید می آید رستمی عزیز که اسم خیلی قشنگی هم داره رستمی ایرانی بعد از دانشگاه بالا می ره ولو اگه باهم اسم تویی استشی <تصفح> اسم توی تشهنجی بله شما بوده با باشه فرض بشه چطور من واژه دانشجو رو پس کفم اون وقت خواهید دید که این دانشجو چه معنی دیباي عظیم عجیبی داره و چقدر پیوند داره به تاریخ گذشته. یا نه. داشتم عرض می کردم خدای شما تلفن های برنامه ای ما 220 405 220 405 220 پنجاه و هشت هشتصد دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد و شماره پیامک ما سی هزار پانسد و پنجاه و هشت هست سی هزار پانسد و پنجاو و هشت هست موسیقی میشنویم سپاسگزارم از شما که داستانش شاهنامه هستش که با ترجمه مطالاتی که ایشون دارن متوجه شدن که کمترش پرداخته شده و این داستان که کمترش پرداخته شده از لحاظ بار دراماتیک و اون پیچیدگی‌های داستانی خیلی جای کار داره ولی خب تا پرداخته نشده دروت بر تو دختر ایران با این مسائلی که من محصر میکنم میبینید که تقریبا شانامه دور بوده از اندیشه فرزندان و محجور افتاده همین مثالی که من درباره کاوه و خیزش فرهنگی میبینه به شما گفتم خب میبینید که از نظر دیگران دور بوده ما باید خیزش بکنیم برای شناخت خود و برای شناخت فرهنگ خود و سراغاز این خیزش فرهنگی نگرش به شاهنامه است دوباره اون وقت می‌بینیم که با این دیتاها چطور میتونیم که داستان‌های بسیار زیبای دلپرزی به وجود بیاریم از جمله داستانی که به قول اروپایی دراماتیک میخواننش اون خوشبختم که یه دختر ایرانی داره این طور پرتش میکنه پرامه اومده من کتاب شاهنامه را دوست نداشتم چون فکر می کردم داستانهای آن جنگ خونریزی است. شما باعث شدید با شاهنامه آشتی کنم. آ... آقای... آقای فرهنگ ره بودند. خب شاد باشین. با, خود... بلا... با خودتون آشتی کردید. با ایران آشتی کردید. با نیاکانتون آشتی کردید. خوش آمدید. هر گاه که برگردید به سور ایران آغوش و مادر بر... بر... روی شما گوشده است. ام... من میخونم این رو آقای دکتر جنیدی برام جالبه دوست دارم فرض خال و هوای برنامه رو عوض میکنه فقط دیگه پیامه این نفرستید فقط این رو میخونم آقای دکتر خیلی لطف دارن درود بر شما از استاد جنیدی میخواستم یک اسم زیبای ایرانی برای دخترم که هنوز به دنیا نیامده پیشنهاد کنند ممنونم آقا مهدی از مازم دارم. من پیشنهاد بکن... که قوم های نورسیده مبارک یعنی تازه میخواد بتون یا بیاد مبارک برای جهان باشه من پیشنهاد میکنم بگذار فرانک فرانک مادر فردون بزرگترین و برترین نام ایرانی برای دخترانه من از سالگی با شاهنامه آشنا شدم فقط میخواستم یه تیکه که اونجا میگه چ رستم گوری در جنگ باید جلیان رستم میخواستم ادامه شد شما برام توضیح برید بچکر میشم دوب درود دو. دلود میپرسم به همه دستم در کاران و فرهنگ شب خوبی را برای شما آرزو میکنم سلام، کنم فاطمه هستم، از برنامه‌سازان من خود استاد هستم و تشکر کنم با و خوبی که میدن، می خوب شما هم تشکر کنم از خودم و خانواده‌ام. درود بر شما رستن پهلوان ما هیچگاه از جنگ نگریخت هیچگاه رستم پهلوان ما همواره آماده جانفشانی در راه ایران بوده منطقه پهلوانی بود که همراه با پهلوانی خرد و فرهنگ داشت همواره برای پادشاهان برای دیگران خرد آرزو کرد. دانایی آرزو میکرد, میکرد. توانایی رو با دانایی آمیخته بود شما ما شاد باشید پهلوانتون هیچگاه از جنگ بیگانگان نگوریخت با سلام خدمت آقای هدایتی سپاسگزارم. از شما و همطور جناب آقای دکتر جنیدی کاوه آهنگر چند فرزند داشت آقای جواد رضایت گرگان خب اگر ما این روشی شکافتیم که داستان کاوه یعنی هنگام پیدایی مس و فلز و دوره برتری فرهنگی ایران بر بیورست باید بدونید که همه فرزندان ایران فرزندان کاوه هستند و اون البته داستانی که در اینجا اومده کی بعضیا میگن 17 تا فرزند داشت دو اینا نه کاوه میگه که چرا فرزندان ایران باید فقط قربانی بشن و فرزندان ایران همه فرزندان کاوه و فریدونن. از از کرمانشان خود من دماس که یعنی برنامک زدم با سلام و تشکر فراوان از شما لطفا از آقای دکتر بپرسید چگونه میتوان از کلاس ها یا جلسات عمومی ایشان استفاده کرد خانم دبیر خانم دبیر بازنشسته ادبیات از کرماشام در به شما دبیر بازنشسته که هنوز آمادگی دارین برای اینکه بیاموزید دانش و فرهنگ نوکان رو ما در تهران در مرکز بنیاد شغرور این کلاس ها رو یعنی این آموزشی رو داریم در رده های مختلف از آغاز که میان تا وقتی که بتونن مت بندهش رو بخونن که یکی از سنگین ترین مح های موجود جهانه این پنج سال به دراز میکشمون تا فرزندان گرامی بنیاد از یکی از یک سال پیش تقریبا آغاز کردن به اینکه فیلم بگیرن از این جلسات فیلم میگیرن و سی دی تهیه شده به یاری این سی دی ها شما میتونید تو خونه خودتون اینها رو نگاه کنید و زبان پهلوی رو بیاموزید حتی از جلسات خوانوخانی هم همینطور سی دی گرفته شده اینها شما از راه دور میتونید ببینید و من آرزو دارم به یه روزی هم از راه نزدیک چهره شما معلم فریخته رو ملاقات بکنم پیامک دیگه با درود و شب خوش خدمت استاد جنیدی و جناب هدایتی سباز کدارم از شما کاوه اهل کجا بود و پایتخت زحاک کدام سرزمین بود پایتخت زحاک بابل بوده معلوم میشه که این شمنده گرامی برنامه پیشین رو ندیده نشده. این بیبرست با... ای همون بوری در عبستا بوده بوری یعنی بابل یعنی در عقل پاتخت اونا بابل بوده و کاوه این سو من وقتی که داستان زندگی و مهاجرت آرگیان رو می نوشتم چند, چند تا روستا پیدا کردم مثل مشهد کاوه و کاوه کالی در, در لرستان. اون وقت هنوز به این نتایجی که امروز رسیدن نرسیده بودم و در کتاب زندگی مهاجرت نوشتم کاوه اهل هر کجا که باشه ایرانیه اما خب معلومه که این کوهستان اوپایی پایری همین کوه است که لرستان و کردستان و خوزستان رو دربر بر میگیره یعنی او رو در بر و این کوه مرکز فلسکری نخستین مرکز فلسگری در جهان بوده سلام بر حضور استاد جنیدی در مورد زبان آذری سوالی داشتم از ایشون بفرمه سوال کنید که توضیح بدهد این زبان گویش آذری آیا بخشی از زبان فارسی ریشه در زبان فارسی دارد و از کی متداول شده این زبان آذری که در ایران الان متداول صحبت میشه سوال بنده این است: هدریت هم از اسلام شده سپاس